هزار افسان برنامی از گروه جوان و فرهنگ به نام خداوند جان و خرد، سلام اگرچه افسانه ها از سرزمین های گوناگون اومدن اما وطن خاصی ندارن و متعلق به همه مردم جهانن در هر افسانهای حادثه و ماجرای خاص نقل میشه که بیان کننده غم ها، شادی ها آرزوها و باورهای اونهاست و اینه راز ماندگاری و دیرپایی افسانه ها از مردمان سرزمین آذربایجان براتون انتخاب کردیم به نام افسانی یادگار برگرفته از کتاب افسانه‌های آذربایجان به گردآوری حمید بخشمند امیدوارم بشنوید و لذت ببرید روزی روزگاری در زمانهاگی بسیار قدیم پادشاه سال به نام بهرام زندگی میکرد پادشاه نه فرزندی داشت و نه غیر از همسرش قوم و خیشی روزی شاه نشسته بود و با خودش فکر میکرد که خدایا برف پیری بد جوری بر سر و روی من نشسته دیر یا زود باید رخت از این جهان بربندم چاره ای نیست اما حیف حیف که فرزندی ندارم که بعد از من بر تخت شاهی بشینه بهتر حالا که در غید حیاتم تاج تختم رو به وزیر ففادارم واگذار کنم و اونو به جای خودم پادشاه کنم بله این بهترین کاریه که میتونم انجام بدم خلاصه فردای اون روز بهرامشا وزیرش رو به نزد خودش فرا خوند و اون از تصمیمی که گرفته بود باخبر کرد. وزیر هم که تشنه قدرت بود از این تدبیر پادشاه استقبال کرد و از همون روز بر تخت پادشاهی نشست و به حکمرانی پرداخت. همسر بحرامشاه وقتی از این ماجرا خبردار شد رو به همسرش یعنی بهرامشاه کرد و گفت ای مرد. این چه تدبیری بود که اندیشیدی؟ چرا پادشاهی رو به وزیر واگذار کردی؟ مکه؟ مکه نمیدونی که به زودی بچه بچهی خواهیم شد؟ بهرامشا با شنیدن این خبر به فکر فرو رفت و گفت ای کاش زودتر این خبر رو به من میدادی؟ همسرش گفت الانم دیر نشده برو و سرطنت رو از وزیر پس بگیر بهرامشا با ناراحتی گفت، نه، نه، دیگه کار از کار گذاشته، من نمیتونم سلطنتم رو پس بگیرم. فقط، فقط میتونم از وزیر خواهش کنم، بعد از مرگ من سرپرستی فرزندمون رو بر عهده بگیره، همین. همسر بهرامشا باز هم اصرار کرد که بهرامشا سلطنت رو از وزیر پس بگیره. اما بهرامشاه نپذیرفت و بالاخره بعد از بحث و مشاجره بهرامشاه به خواب رفت و در خواب دید که سه روز بیشتر از عمرش باقی نمونده صبح زود وقتی از خواب بیدار شد یه راست رفت سراغ وزیرش تا خوابی رو که دیده بود برای اون بازگو کنه وزیر با دیدن شاه که صبح به اون زودی به سراغشون هده بود تعجب کرد و از اون پرسید قربان اتفاقی افتاده که صبح به این زودی به سراغ من بهرام شاه گفت وزیر شب خواب دیدم که سه روز بیشتر از عمرم باقی نمونده بعد از مرگم از تو میخوام اگه فرزندم به دنیا اومد اونو به جای خودت بپذیری و سرپرستیش رو بر عهده بگیری آیا این قول رو به من میدی؟ وزیر به بهرامشا اطمینان خاطر داد و اون رو با دلی قرص و استوار روانه خونش کرد بعد از گذشت سه روز بهرامشا دار فانی رو ودا گفت و درست همون شب وزیر در خواب دید که فرزد آینده بهرامشا وقتی به پانزده سالگی برسه ادعای تاج و تخت پدرش رو میکنه. وزیر که حالا دیگه پادشاه شده بود با وحشت و نگرانی از خواب بیدار شد و بلافاصله وزیرش رو به نزد خودش فراخوند و بعد از بازگو کردن خوابی که دیده بود اون گفت: آه خدای من، اج خوابی بود. فوراً باید همسر بهرامشا رو قبل از اینکه وضع هم کنه سربنیست کنین. وگرنه فرزند اون بیشک تاج و تخت رو از من میگیره و ادعای پادشاهی میکنه همسر بهرامشاه باید نابود بشه وزیر که آدم با انصاف و خوشدادی بود با لحن آروم می گفت قبله یالم همسر بهرامشاه چه کنایی کرده تا به مرگ باشه این؟ این از مروت و مردانگی به دور قرمان درست نیست که در حق کسی که تاج و تخت به این عظمت رو به شما بخشیده اینچنین رفتار کنین پادشاه با, با عصبانیت گفت وزیر این حرفا به تو نیومده بهتره که پاتو از گریمت درستر نکنی حالا هم برو و به جلاد غصب بگو که کار رو تموم کنه وزیر گفت ای فرمانروا. امر، امر شماست، اما میترسم که اگه در ملع عام این زن رو حلقاویز کنیم، مردم ما رو سرزنش و ملامت کنن پادشاه گفت، خب، این کار رو در خلوت و بدون اطلاع مردم انجام بدین به هر شیوه ای که خودت میدونی دونی، فقط هرچه زودتر این کار رو یکسنه کنین وزیر هرچند راضی به کشتن زن بیچاره نبود، ولی نومیدانه نزد جلاد رفت و به اتفاق اون همسر بهرام شاه رو به بیشه دور دست برد تا فرمان پادشاه رو اجرا کرد وزیر در این فکر بود که شاید راه حلی برای راهی همسر بهرامشاه از شنگار مرد پیدا کنه اما از طرف دیگه به جلاد قصر اعتماد نداشت و از اون میترسید که نزد پادشاه بره و پرده از روی ماجرا برداره و اونو رو کشتن این بود که بعد از تردید بسیار برای اون که دستش به خون این زن بیگناه آلوده نشه به جلاد گفت جلاد من همینجا منتظر میمونم تا زن رو به طرف دیگهای ببرو اون چه که وظیفت حکم میکنه در حق اون انجام بده وزیر این رو گفت و با خودش فکر کرد که شاید جلاد دلش به رم بیاد و زن رو از مرگ نجات بده اما جلاد بیرم از اونی بود که وزیر تصور میکرد اون با شقاوت تموم همسر بهرامشاه رو به گوشه‌ای برد و اونو به قتل رسون و خیلی زود نزد وزیر بازگشت. وزیر برای اینکه از مرگ و حیات زن کاملا مطمئن شده باشه به جلاد گفت: ای hey جلاد، حالا که به وظیفت عمل کردی بهتر زودتر به قصر برگردی. منم میرم تا جنازه این زن رو دفن کنم و برگردم. وقتی وزیر به محل قتل زن رسیدید که در کنار جسد زن پسر پسروچی نوزادی آروم و ساکت قرار گرفته وزیر متوجه شد که زن در آخرین لحظه زندگی فرزند خودش رو به دنیا آورده وزیر که از تماشای این صحنه خیلی ناراحت شده بود نوزاد رو در پاشهی پیشید و بعد همسر بهرام شاه رو دفع کرد وزیر فکری کرد و بعد سرگزش زن رو به طور مفصل در کاغذی نوشت و در پایان اضافه کرد ای ره کسری از این محل عبور می کنی. در داخل قنداق این کودک مقداری تلا و جواهر گذاشته شده با فروش اونها می‌تونی هزینه نگهداری از این کودک معصوم رو تأمین کنی یقین بدون که روزی نتیجه این عمل نیک رو خواهی دید، اسم کودک رو هم یادگار بگذار وزیر کاغذ را به قنداق کودک سنجاخ کرد و به قصر بازگشت اما بشنوید ادامه‌ی افسانه رو ساعتی بعد از رفتن وزیر کاروانی از راه رسید و درست در همون محل که کودک قرار داشت به قصد استراحت بار انداخت تاجری که در اون کاروان بود یه دفعه چشمش به نوزادی افتاد که به قنداقش کاغذی سنجاق شده بود تاجر بعد از خوندن کاغذ نوزاد رو برداشت و با خودش برد و وقتی به شهر رسید دایهی برای نوزاد پیدا کرد و اونو به دایه سپرد تا بزرگش کنه و به دایه گفت که اسم بچه یادگاره زنی که دایگی یادگار رو پذیرفته بود مدت سه سال مثل مادری دلسوز از کودک نگهداری کرد بعد از چند سال که یادگار بزرگتر شد تاجر خودش تربیت اونو بر عهده گرفت و به تدریج فنون جنگ رو بهش یاد داد طوری که یادگار در تیراندازی شمشیزنی و اسب دوانی مهارت خاصی پیدا کرد تاجر که حالا پدرخونده یادگار به حساب می اومد شبها برای یادگار از ظلم و ستم پادشاهان و جلات ها قصه ها تعریف میکرد و در ضمن همین حکایت ها و قصه ها بود که سرگذشت مادرش رو هم از زبون دیگرون و در غالب قصه برای اون نقل کرد خلاص اونقدر گفت و گفت و گفت تا کینه پادشاهان در دل یادگار ریشه دوند حالا دیگه یادگار رفزانه ما پا به مرحله جوانی گذاشته بود در این مدت در زور و بازو و دلآوری چنان شهرتی به دست آورد که تمام جوانمردان و دلاوران شهر دورش جمع می شدن. و به قدرت و شجاعت اون قبطه میخوردن روزها گذشته تا که یه روز یادگار از تاجر یا همون پدرخوندش اجازه گرفت تا بار رفقاش به گردش و سیاحت بره. تاجر هم به اون اجازه داده گفت پسرم برو اما مراقب خودت باش و زود برگرد. یادگار به همراه دوستاش به گردش و سیاحت پرداختن و بعد از گشت و گذار در خارج از شهر به یه میدونگاهی رسیدن. ساعتی رو در اونجا عصد دوانی کردن و مهارت خودشون رو در شمشیر بازی به نمایش گذاشتن و بالاخره کشتی گرفتن در این موقع دختران پادشاه به همراه تعداد زیادی از ندیمه سوار بر عصب ها زیبا و تیزبا از اون حوالی گذشتن و با دیدن یالار و دوستاش حوص کردند کمی اونا رو به باد تمسخر بگیرن و این کار رو هم کردن یادگار از رفتار تأخیرآمیز دخترها ناراحت و عصبانی شده بود جلو رفت و از اونا اصل و نسبشون رو پرسید دختران و پادشاه با قرور و تکبر گفتن تو جوون بی سر و پا چجوری به خودت اجازه میدی از ما اصل و نسبمون رو جویا بشی ها مگه نمیدونی ما دختران و پادشاه هستیم یادگار با شنیدن این حرف و با کینه ای که نسبت به پادشاهان در دل داشت با قاطعیت جواب داد شما دختران هر که باشید حق ندارید به من و دوستام توهین کنین و ما رو مورد تمسخور قرار بدین دختران پادشاه از این حرف یادگار برا شفته شدند و با عصبانیت گفتن پسر ی گستاخ به زودی جواب این گستاخی رو میبینی. و بعد با سرعت از اونجا دور شده و غص رفتن اونا یه راست رفتن سراغ پدرشون و ماجرا رو برای اون بازگو کردن پادشاه که ناراحتی دخترانش رو دید فورا وزیر و وکیل خودش رو فرا خوند و درباره نفیگ دستگیری یادگار و دوستاش اونا به مشورت پرداخت. و سرانجام قرار بر این شد که پیغامی بفرستن به یادگار و دوستاش رو به محضر پادشاه فرا بخونند. پادشاه هم تاکید کرد اگه این جوونای گستاخ با پای خودشون اومدن که هیچ. اما اگه از اومدن سر باز زدن اون وقت لشون بفرستیم و نابودشون کنیم. به دنبال این قرار ایده سوار مأمون شدن تا پیغام پادشاه رو به یادگار و دوستاش برسون. وقتی مأموران پادشاه پیغام شاه رو به یادگار رسوندن یادگار با خون سرد گفت از قول من به پادشاه بگید که من دشمن تمام پادشاهانم. سواران پادشاه به قصر برگشته و پیغام یادگار رو برای پادشاه نقل کردند پادشاه از گستاخی یادگار به شدت خشمگین و ناراحت شد و با قشون خودش رفت سراغ یادگار یادگار یه دفعه چشک باز کردید بله مثل نگین انگشتر در محاصری نیروهای پادشاه قرار گرفته به همین دلیل به پادشاه گفت ای پادشا من و یارانم سیصد نفریم و شما ده هزار نفر مقابله با چنین نیروی نابرابری از مردانگی و انصاف به دوره اگه براسی جنجو و جوون مردی؟ بدونیم که ادهی آدم بیگناه رو به بدیم بیا تا من و تو با هم بجنگیم. هرکس هر کس طرف مقابل راست پای در آورد، اردوی اون پیروز به حساب میاد آیا این پیشنهاد رو میبذیری؟ بادشاه به فکر فرو رفت میخواست از قبول پیشنهاد یادگار سرباز بزنه اما فکر کرد که شاید این کار اون در بین قشون به ترس از دشمن تعبیر بشه این بود که ناچار شد پیشنهاد یادگار رو بپذیره از طرف دیگه پادشاه که در طول مدتی که به جای بهرام شاه حکومت میکرد تمام فوت و فن جنگ رو یاد گرفته و پهلوانی قوی و نیرومند شده بود خلاصه پادشاه و قهرمان افثانه ما یعنی همون یادگار سه شبانه روز شمشیر زدند، اما هیچ کدوم نتونستن بر حریف خودشون قلبه کنن اما در آخرین ساعات سومین روز نبرد و مبارزه یادگار نقعی کشید و مثل شیدیشیان به طرف پادشاه حمله برد پادشاه که خسته شده بود فرصت و مجال اون رو پیدا نکرد تا از خودش دفاع کنه در نتیجه شمشیر یادگار اون رو از کمر بدونیم کرد گشون پادشاه با دیدن شکست سردار خودشون تسلیم شدند و یادگار بعد از خل اصلاح قشون به قصر پادشاه هم کرد وقتی یادگار به قصر پادشاه هم کرد به سراغ وزیر رفت و خواست اون رو هم با شمشیر بدونین کنه که وزیر رخصت خواست و گفت پسرم من از مرگ ترس و واهمی ندارم عجزلا نمی نمیکنم اما میخواستم در این دم آخر بدونم که تو کی هستی که با شجاعت تمام پادشاه ظالم این سرزمین رو به هلاکت رسوندی یادگار جواب داد من پسر فلان تاجرم و اسمم هم یادگاره من از پادشاهان کینه ی زیادی در دل دارم وزیر با شنیدن اسم یادگار انگشت حیرت به دندون گرفت و گفت پسرم اگه در کشتن من شتاب کنی بعدها پشیمون میشی بهتره کسی رو بفرستی تا پدرت رو به اینجا بیارن من چند کلامی با اون صحبت میکنم و بعد در اختیار تو هستم یادگار که احساس کرد راضی در این میون وجود داره مأموری رو برای آوردن پدرش یا همون مرد تاجر فرستاد وزیر بعد از ملاقات تاجر گفت ای برادر آیا میتونی سوگند بخوری که این پسر فرزند حقیقی توه؟ تاجر از جیب خودش نامی در آورد و گفت این پسر فرزند حقیقی من نیست اصل و نسب اون به طور مفصل در این نامه نوشته شده وزیر بعد از دیدن نامه یادگار رو در آغوش کشید یادگار با تعجب پرسید خدای من پرده از این راز برداریم. وزیر نامه را برای یادگار خوند واصل و نصب اون و سرگذشت پدر و مادرش رو تمام و کمال برای اون بازگو کرد و گفت پسرم تو صاحب حقیقی تاج و تخت پدرت شاهی. از اون به بعد یادگار به جای پدر بر تخت پادشاهی نشست و وزیر رو برای خودش نخست وزیر و تاجر رو هم به عنوان وکیل تنگ کرد و با مردم به عدالت و مهربانی رفتار کرد. افسانه یادگار رو از مردمان سرزمین آذربایجان براتون نغردم از کتاب های آذربایجان به گردآوری حمید بخشمند افسانه ها چیزی فراتر از خیال بافی یا پژواک سنت های گذشتن بیش از هر چیز این افسانه ها با اسباب رؤیاهای کسانین که اونا رو خلق کردند یا گفتن یا شنیدن رویاهای از داشتن عدالت اجتماعی زندگی سرشار از کارل زبخش صلح و آرامش و در نهایت رهایی هزار افثان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالح پور ویراستار بحار گیویان اجرا مهران دوستی صداوردار محفام پرتور تایی کننده زهرا عبدالله زاده تا فرصتی دیگر و افثانه دیگر بدروت